اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمت الله تعالى وبركاته الله تبارک و تعالی رو بسیار سفاست داریم و تشکر میکنیم چون هر روز و هر شب حیات ما و شما را تمدید میکند و یک فرصت دیگر برای مزید تقوا و علم و حسنات و خوبی ها و یک فرصت دیگر برای جبران مافات توبه از کوتاهی و تقصیرات گذشته همین این فرصتهای خوب تشکر لازم دارد و تشکر جز تقرییت خود بنده و ای که اون فرد بهش مرتبط هست چیز دیگر نیست این تصور باید تصحیح بشه که اگر فردی خوب بشه خوبیش تنها برای خودش نیست. تصور بکنید اگر یه شمع کوچیکی روشن بکنید به اندازه روشنایی و توان اون شمع ما هم شم یا نخواهن روشن خواهد شد. به مراتب هرچی این روشنایی بیشتر باشه و قویتر باشه و شعاعش بیشتر باشه قطعاً افراد بیشتری از اون روشنایی استفاده می‌برن انسان مؤمن و انسانی که تمام وجودش خیر هست و نیت خیر دارد قطعاً همین طور هست و اگر می‌بینیم که افرادی معصیت خدا می کنند و هنوز نفس میکشند و زنده هستند و تحرک دارند و این طرف و اون طرف میچرخند فکر نکنید که به خاطر گناهشون هست و به خاطر توانائی که در گناه کردن دارند بلکه به برکت افرادی است که در مقابل اونها دارن عبادت و بندگی خدا کنند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند اگر یک ادی در کاباره مشغولند، در عیاشی مشغولند، یک ادی هم در خانه خدا، در جامعه، در عمت اسلامی به کارهای خوب و عامل منفعه به امر به معروف و نهی از منکر مشغولند. یا برای اونا هم دارن دعا میکنن که خداوند و تلاش میکنن که هدایتشون بکنه. پس خوبی اینها مثل نور شم است که پیرامون خودش رو روشن میکنه و بهره مند میشن، روشنایی ایجاد میکنه. دیشب وقتی در بغض افتاد اما شما استقامت کردید و تا آخر برنامه بودید ولی برنامه بعد از نماز انجام نشد. امشب دنباله بحثی که پریشب شروع کردیم اسباب انشراح نفس آیهی که در صدد تفسیرش بودیم آیهی 125 و 126 و 127 سوره انعام بود خوندیم ترجمه مختصر مفیدی از این ستا آیه داشتیم بعد پرداختیم به اسباب انشراح صدری که ابن القیم جوزی در کتاب ارزشمندش به اسم زاد المعاد توشی روح آخرت ترجمه کتاب اینه عنوان کتاب زاد المعاد ترجمه این عنوان توشی راه آخرت توشی معاد کسی که میخواد توشی بگیرد آمده اسباب آرامش و استقرار نفسی و روحی و روانی را نه سبب بیان کرد اولین سبب اگر خاطرتون باشه و از بزرگترین عامل و مهمترین عامل انشراح صدر هدایت و توحید بود شما این نهتا عنوان را تو حافظه بسپارید وقتی این نه عنوان رو در حافظه سفردید شرحش برای شما میسره به مرور زمان وقتی که اطلاعات و آگاهی تون بالا میره خود خود میتونید این نه سبب رو تفسیر بکنید، شرح بدید و اگر میخوای این معلوماتو داشته باشید وقتی برگشتید حداقل برای یک نفر بازگو بکنید این یکی از راههای تثبیت معلوماته حالا چه دوستی تو مغازه شاگردت؟ قرار نشده که شاگردت فقط تا آخر هم شاگردت باشه اگر تو علمی بلدید چیزی از تو یاد نگیره حالا در شرح این نهتا سبب رسیم به علم و جریان موسا و خزر رو اشاره کنیم. یا به همسرت یا به مادرت یا به پدرت اسباب انشراح صد رو بگو همین آیه براش تفسیر کن و اسباب انشراه صدر رو براش بگید. اگر خود تنهایی همسر تو هم با تو منشره و صدر میشه و تو نیاز داری که همسر تو در کنار تو آرامش روحی و روانی با تقای خدا داشته باشد نه اینکه خودت آرامش پیدا کردی اسباب انشراه صدر رو فهمیدید همسرت فیلم هندی نگاه بکنه آرامش رو از خودش و از تو بگیره. و در طول زندگی هم در کنارته یا فرزندامه یا مجموعی که با تو کار میکنن چقدر زیباست که شرکای تو شاگردای تو کسانی که تو مغازه و شرکت کار میکنن با تو هم فکر باشن هم دل باشن این مسائل رو مدادسه بکنید خیر و برکت میاد در خود در شرکت در مجموعه وقطعا سبب رشد تو خواهد شد پس اول هدایت و توحید بود و تخلی از شرک و زلالت و گمراهی دوم نوری که خداوند پرت میکنه و میندازه به سبب اخلاصی و به سبب تهارت قلبی که به خدا نشان میدید هرچه کنی به خود کنی بر همه نیک و بد کنی کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروی از جوز جو اگر تو یک دل شایسته از خودت به خدا نشون بدی حتیان روز به روز نور ایمانی که خداوند به دلتو می کاباند غیر از نور دیروزیست روز به روز این نور تقویت می شود و روز به روز رایی که در پیش داری روشندتر و درخشندتر می شود حدیثو خوندیم براتون اما سوم سومین عامل و سببی که دل منشرح می شود ابن القیم می گوید، العلم علم هست اما کدوم علم دیگه علم نافعی که هرچند معلوماتت و اطلاعاتت بالاتر می ره، هدایتت و تقوات و اخلاقت و رفتارت و آداب و معاشرتت و حسناتت و خوبیهات و تلاش مبارک افزایش بده و فاصله بین تو و خدا و رب العالمین و خوبی را روز به روز با افزایش این علم کوتاه‌تر میکنه. پس علمی سبب انشراح صدر می شود که موروس از پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد یا علم روز باشد و از که در خدمت کارهای مفید و نافع و عام منفعه و در خدمت جامعه بشریت باشد نه علمی که تو را از خدا دور بکند پس علم نافعی که تو را براب بالعالمین برساند حالا حتی اگر علم فیزیک باشد شیمی باشد زیست شناسی باشد میدونه اگر که تخصص داشته باشید یا رشته زیست باشد یا طب باشد چقدر میتونید از این مسائل برای خداشناسی برای خدا پرستی، برای خداپرستی برای تقویت ایمان برای افزایش ایمان در جامعه و در خودت بکار بگیرید سنوری هم آیاتنا فی و فی انفوسه ما نشانه های قدرتمون را در آفاق و در انفوس به شمانشون بیدیم پس علم طب و علم زیست و علم فیزیک و علم شیمی خداوند خالق رنگ هاست چقدر رنگ آفریده خداوند اصول رنگ‌ها رو خدا آفریده. اما ترکیبات این رنگ‌ها به انسان عقل داده که فکر بکنه، علمی را بیافرینه که از ترکیب دو رنگ یک رنگ سومی رو تولید میکنه چقدر رنگ‌های زیبا آفریده خداوند. من به شما نگفتم یه سفری 15 روزه رفتیم تا اطراف ایران چرخیدیم تقریبا 4 5 روز تو منطقه گلستان و شمال بودیم خلخال و تالش و اصلالم و این منطقه دوستانی که همراه همراهمون بودن وقتی این طبیعتو می‌دیدن باور بکنه تو ماشین فقط می‌گفتن سبحان, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله یعنی خود این رنگ سبز جنگل این التفاف درخت ها در همدیگه این کوهی که اینطوری پوشیده شده بود همش چشم نوازش نوازش میکرد همش عظمت خدا بود همش لا می میگفتن حالا اگر انسان علم این مسائلی که پیرامونش هست و در محیطش داره زندگی میکنه و در کنارش هست و در درونش هست بهش پی ببره امروز علوم خداشناسی به اوج رسیده اگر کسی امروز خدا شناس نباد پس اون معاند هست. نه اینکه دلیل براش نرسیده. تونل هست زیر آب میره 500 متری، 1000 متر هزار متر شیشه ای اکسیژن درش تنظیم شده 100 دلار میدید در هنگ کنگ در مینگند جا جاهای دیگه میری زیر آب یک ساعت دو ساعت جاهب خدا رو زیر آب میبینید کجا از صحابه رسول الله زیر آب رفتن که عجائب و خدا رو زیر آب ببینن؟ فقط یونس رفت زیر آب که واقعا هم عجائب دید وقتی در شکم نهن قرار گرفت گفت لا اله الا انت سبحانك اینی کنتم من از والمین همجور کلمه کامید گفت خدا نجات نشتاد و سفر اسرا و مراجی که پیامبر رفت گفت آسمان و شکارت ولی امروزه هر انسان آلوهی میتونه به خضا داره هواپیما سوار بشه هر انسان میتونه زیر آب بره و با یک دبم زدن تمامی علوم و خنون امروز و همه ابتكاراتو، و خلاقیتها و اکتشافات و اختراعات میاد جلو انسان به های مختلف ترجمه شده علما الان تفسیری دارن به اسم تفسیر تصمیری قرآن برای کودکان تفسیر تصمیری دیگه صحبت نمی کنه سوره اررحمنو می خواد تفسیر بکنه موضوعاتش مشخصه مثل اینکه که تو موضوع میدی. به بچه های پنجام ارتدایی چه؟ این عنوان مواد مخدر نقاشی بکشید بهتره نقاشی چه؟ اون درباره مواد مخدر نیمی نویسه که چه آفتی داره چه فلانی داره چه مزراتی داره اون میاد نقاشی میکشه و اون عنوانو میرسونه علم هر علمی میتونه نافع باشه به شرطی که خدا به نظر باشه قبلا هم گفتم خدای ما خدای زیبایی هاست علومی که زیبایی های طبیعت به تو نشان بده و جلوه بده اون جزو علوم خداشناسیست جز علوم محترمه علومی که زیبایی ها را هنرنمایی های طبیعت که پشتش اللهه تو نماز تو دعا می کند در ستار که اللطیف بیدون لطیف به معنی چی کسی که زرافت کاری بلده. کسی که بلد گلها و بردهای های گل رنگ بکنه پرندگان رنگ بکنه سبحان الله همه ما میریم اصلاحان که نمیدونم کل سی کل و نمیدونم فلان و جاهای دیگه ببینیم ولی دیدنی تر از پل سی کل سکل که چارت سنگ رو هم گذاشته انسان باغ گلها و باغ پرنده هاست من سال گذشته بود بچه ها مو بردم لمادت شاید یک ساعت دو ساعت همین باق گل ها و پرندگان اله هر سال میگم بابا ما رو اگر میبری ببر باق پرندگان انواع پرندگان رنگارن زیبا قشنگ همه میگه سبحان الله هر نوعی که میبینی یا یک نوع چقدر مکنه الان کتاب ها آمده درباره طبیعت دایره المعارف طبیعت انار آورده انواع انار فواید انار شکفت های انار آورده تو نصف صفحه معلومات هم بده شطور آورده افلا ینظرون ال ال كيف خلقنا الى السماء رو بعد. امروز اگر کسی خدا رو نشناسه با این همه پیشرفت علمی و هنری و این همه ابزار ارتباطاتی که علم زود میتونه انتقال بده بچه های ما اگر به زبان انگلیسی بپردازند، زبان فرانسوی بپردازند، زبان عربی بپردازند، پردازن متاسفانه متاسفانه زبان مادری خودشون درست ولد نیستن؟ سال چند تا جمله مفید خوب و تو فارسی ما یاد میگیریم و یاد میدیم سال چند تا کتاب مطالعه میکنیم همین قرآن هم به زور فقط تو رمضان یک جز به زور اگر تا آخر نماز نمونیم میشنویم دیگه سرش هم باز نمی کنیم که تو فکر معنیش بریم هر علمی و هر زبانی که یاد بگیری افق تو رو چند برادر بازتر میکنه افق فکری سبحان الله اگر بچه های ما یک زبان غیر از زبان مادری بلد باشن میدونی چقدر اطلاعات به معلوماتشون افزایش پیدا میکنه یک بچه در سن پنج سالگی 6 سایل سی سالگی, سالگی توانایی سه تا زبان همراه هم غیر از زبان مادریش داره. که همزمان با هم یاد بگیره. ولی ما نمیفرستیم. بچه از اول ابتدایی بره تا سوم راهنمایی کلاس زبان کلاس عربی، تو همین چند سال باور بکنید حتی ده هزار تا جمله و کلمه یاد میگیره دیگه خلاص خود به خود راه افتاده اینا به عنوان یک سرمایه برات میمونن و پایه های علمیش میشن و فکریش افقش رو باز میکنه امروز ابزار علم همین کامپیوتره اطلاعات توینه علم وقتی یک عالم دین کمیاره کم از نظر زبان از نظر استفاده از ابزار ارتباطاتی که با جهان میتونه ارتباط برقرار بکنه الان دوستای انترنتی هستن باور بکنی کسانی هستن که با انترنت با عالم تو از هر ارتباط برقرار کرده باید جوان مسلمان مسلمان شده اطلاع داده دوست انترنتی حبدالمجیز اینجا شسته می نمی که من چه دارم میگم دوستان میگن ما تو کشور این دیگه دوست تیدا کردیم با همدیگه مخاطبه داریم با همدیگه محاوره داریم میرین تو ساید میزنیم اون میاد پشت کرد حالا نزدیک شده که چیزی نمونده که دیگه شهادتشو اعلام میکنه شهاده فیلمش نه یک مورد نه صد مورد هزارها مورد امروز اگر یه مولای خوبم بخواد بشید که کم نیارید باید از ابزار زمان استفاده بکنید در اختیار باشه ما در کشورمون چند تا عالم سونی داریم خیلی مطرحن چند تاشون زبان انگلیسی بلدن الان سونی نمیگن از خودم گرفته برو فکر میکنیم به درد چی میکاره هیچی یه زمانی یک که نمیگونم هلندی بود کجایی بود یک سالی آمد تو این خانه همسایه مسجد سید حبیب اینجا پیش نماز بود بلندگو بالا باز بود توریس بودن جهانگر بودن اینجا دعوت بودن تو همسایدی این مسجد قرآن از بلندو پخش می شد. نماز تراوی بود اصلا معنویت قرآن و نقمات قرآن و آهنگ موضوع قرآن اونو گرفته بود آمدم تو همین محراب من یه نسخه قرآن ترجمه انگلیسی داشتم خودش و خانمش بود دعوتش کردیم خونه همونو داشت هدیه دادم و خودش گفت من مسلمان شدم من کار ندارم دیگه که دل کسی که نباید دیگه برید داشت کافی که راز گفتی هم. ولی همین که این صدا رو شنید و آمد اینجا و نشستی داشت با جماعت هوای ریگی بود. بود، نیوی دریایی بود، زبانش خوب بود، پرجمه کرد خیلی مسائل اصلا برایش خیلی جالب بود اون چیزی که نیاز رشد امت اسلامی است در قالب یک علم همه ما باید تشویق بکنیم تا همه فرا بگیرن علم همه علوم رو ما میتونیم مفید بکنیم درباره علم ابن قیم چی میگه میگه علم سینه آدمو منشره میکنه و اونقدر این سینه رو وسیل میکنه وسیفتر از کل جهان متن عربیش بکنم زیباست فإنه فَاِنَّهُوْ الصدر و وَيُوَسْعَهُوْ حتی یکون اوسع منت دنیا اونقدر میگه دل و منشرح میکنه علم اطلاعات معلومات مفید خوب دلو دل و گشاد میکنه و وسیع می کنه به درجه ای که وسیع تر از دنیا قرار شده. و دو ساحل نداره یکی دریای علم و یکی دل انسان تو چقدر محبت می تونی داخل اینجا بدین؟ بازم فرمه می شه خداوند از زمین و آسمان بزرگتره که این دل تو جا داره محبت خداوند به وسعت آسمان ها و زمین ها و مافوق و آسمان. محبت چقدر مؤمنین تو دلته این چارچوب این دیوار اگر 400 نفر توش بشورده بشینن تمام شد ولی تو دل تو یک میلیارد نشسته یک میلیارد و چهارصد میلیارد نشسته بلکه 5 میلیارد نشسته دوست داری که اون 4 میلیارد هم مسلمان بشن خوب بشن مؤمن بشن با خدا بشن بس محبت اونام دارید محبت قبل از اینام داشتید محبت اونایی که بعدم میان دارید این دل وقتی که محبت خدا توش میشینه و علم خدایی توش میشینه باز میشه وسیع میشه و وقتی این محبت ها و این علم و تقوا و ایمان ازش خارج میشه خوش میشه پشورده میشه تنگ میشه تحمل هیچ کس نداره بعد میگه ولیس هاد ذلک كل علم و این برای هر علمی نیست بل العلم الموروث عن الرسول صلی الله علیه وسلم سلم و العلم النافع میگه برای هر علمی نیست بلکه رایه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسیده و علم نافع هست ما دو نمونه عالم شدن داریم عالم شدنی که نیاز به مدرسه هست کلاس درس هست معلم هست سر کلاس باید بنشینی صندلی هست کلم هست دفتر هست گوش دادن هست نگاه کردن هست نوشتن هست مذاکره کردن هست بحث کردن هست تا تو عالم بشی اگه نیتت هم خیر باشه عالم میشی این یک نوع علم اما علم دوم علم لدونی بهش میگن نیاز به قلم و دفتر نیست سر کلاس هم نمیخواد برید علم لدونی علم لدونی دو تایه تا دربارهش در آمده یکی چند شب پیش گذشت میخواستم ترجمش کنم نشد و دیگری چند شب بعد میاد ولی من برای شما میخونم خاطرتون هست آیه 282 این سوره بقره آیه دین طولانی ترین آیه در قرآن یک صفحه است آیه دین بهش میگن آخرین آیات این این آیه است آیه 282 سوره بقره و تک الله دنبالش چه و تک الله شرط و مشروطه دنبالش که میگه و تک الله شما دوست دارید عالم بشید یک علم باید سر کلاس درست استاد بیا سر کلاس درست یک ساعت بشنید صندلی، میز کلم، دفتر، کتاب باز کنی جلو او یک علم خبیهیه هر کسی به اندازه استعدادش و دقتش و عددش و نظمش و حضورش در کلاس و مناقشه درس با استاد یاد میگیره اینم دوباره به اندازه درست هست و تق الله کسی نگفت دنبالش و یعلم الله درست نجید؟ بایی قرآن رو و مید و تقو تقوی خدا داشته باشید از خدا به پسید نتیجهش چه میشه و یعلم الله الله میشه معلمتون خود شخصا میاد معلمت میشه از این میگه سریعتر خدا صحبت نکرده و تقوی الله بعد میگه و یعلم کم الله جمعه او خطابش جمعه میگه با هم از خدا به ترسی خدا همه تون رو عالم میکنه خیلی مختصر شرط و مشروع اولی تحقیق پیدا کرد تمسط شما دوبیش که خلف قده نمیشه نیاز به قلم دفترم نیست ده سال مدرسی دینی رفتنم نیاز نداره و تق الله و یعلم الله. از این دیگه امیدوار کنند تقل که خدا شخصا خودش میگه من معلم شما باشم و الله و یعلم الله همه من با هم تصمیم میگیریم که الله کاری میکنیم که الله معلم آن باشه بیاد اصلا کلاس دست داره ما بزهره احساس میکنی که اصلا شناختت فهمت درکت شعورت روز به روز نستر به خودت به شخص خودت و هدف از خلقتت و به کل طبيعت قیرامونت و به کل این کلامی که نازل شده و احادیث پیامبر صل وسلم و فلسفه وجودت روز به روز اطلاعاتت بیشتر بشه شعورت بالاتر بره وتق الله و يعلمكم الله بعدش دوباره چه گفته ختم آیه والله به کل شیئن علی خدا هر چیزی را می داند یه چیزایی یادت می که فقط خودش می دونه و علم آدم الاسماء كلها و الله به کل شیئن علی خدا به هر چیز عالم هست همه چیز خدا بلده. یه رمز رموزاتی یادت میدی که فقط خدا خودش از داند و تو این رمز رموزات یه قدرت های برای تولید میکنه ایجاد میکنه به وجود میاره که سبحان الله حضرت عمر را دلانو روی منبر رسول الله صلی اللہ علیه در مدینه خود بمیخون لشکرش تو ایران میجنگیدن یک دفعه پریاد زد یا ساریت الجبل تقوی چنین علمی رو تولید میکنه که اون علم قدرت تولید میکنه سروازان امیر عمر بن الخطاب وقتی میخواستن از دجله و فرات رد بشن در هار تلاکان بود با اسفاشان از دجله و فرات رد شده اون طرف هم پایتختی پایتخت یز گرد بود که همه منتظرشون بودن که قتل همشون بکنن نه دریا مقاومت میکرد نه آقیانوس جلوشون میستاد نه سهران نه توفان نه با جامعه ما مریضه خود ما همه مریضیم دو نفر نام میبرم شنیدید اسمشان یه نفر رو که خیلی میشنسید محمد ابن ادریس شافیی رو که میشنسید دنیای علم بود ابن تایمی رحمت الله علیه جمعیم که میشنسید هم جهاد هم علم با قلم و با شمشیر امرو معروف نحی ازمان کر نوشتهاش و شمشیرش بعضی ما ماقه معلوماتش فراموش میکرد وقتی معلوماتش فراموش میکرد سر کتاب باز نمیکرد نگاه میکنی یادش بیاد. تا خودمان تا فراموش کردیم سر کتاب باز میتونیم نوت برداری میکنیم یادمان آمد تو جیوه ما میذاریم اله وقتی معلوماتش فراموش میکرد میرد یک گوشیم اینش از شروع میکرد استغفرالله الله استغفرالله سفر الله العظيم سفر الله العظیم سفر اللهظیمظیم فر الله, الله, الله... وظ به هزار بار می رسید یادش نمی بسته بود. بار هزارم یک دفعه ذهنش باز شد خدا به دلش الرواقا می حافظشو بر رو برمیگردون میدونی چ برم میگم امام شافعی یک روز دید که حافظش کم شده معلوماتش فراموش میکنه سرمایهش داره دستش میره یک استادی داشت اسم وکی رفت پیشش گفت جنابشه جناب استاد کمکم کن سرمایه داره بر باد گیره علم دارم فراموش میکنم معلوماتم سرش رو تکنده داد. امام شافعی کسی نموده که روز برش بگذره تو ست تا کتاب نگاه نکنه امام ابن تایبیه ست تا کتاب تفسیر میکن اگر میخواست یک آیه رو تفسیر بکنه. ست تا کتاب تفسیر میکن اما بازم دستش بلن میکرد و این دعا رو میکرده گفت یا معلم ابراهی معلمی بعد از این که تا تفسیر مطالعه می کرد برای تفسیر یک آیه وازم می گفت یا معلم ابراهیم علمی ای معلم ابراهیم منظورش ابراهیم خلیله از اون علم یادم به و یا معلم محمد صلی الله علیه وسلم علمی یادم به. به خدا گفتی یادت بده؟ حالا که مشخصد که علمی غیر از علم کتاب و دفتر و قلم و استاد و دانشگاه هست جهان شش مامیر دانشگاه آزاد فکر میکنه پروفسور رو فکر رو متفکر اگه در دنیا هست خودشه منظرت میخوام و روز بروز هم از خدا فاصله میگیره از خوبی ها فاصله میگیره تعهداتش کم میشه و خودش رو فکر رو متفکر حساب میکنه و دیگر رو همه چه؟ متخلف و رجعی و عقب افتاده. یا معلم ابراهی معلمی چقدر ادب داشتن و یا معلم محمد صلی الله علیه وسلم علمني همونطوری که یاده این بندگان خاص دادی یاده منم بده دلم منشرح منشره بکن ذهنمو رو باز بکن توی پدر برای بچه دعا کردی فقط تو فکر که زن خوب برش بگیری بس زن خوشگل خانه برش درست بکن بکنی فکر بکنی دامادش کردی کمان شده رفت یک بچه عالم تربیت بکنی که دنیایی رو خدمات بده میدونی چیه؟ فراموش کردیم مرد شکایت کرد پیش استادش وکیه امام شافعی محمد ابن ادریس محمد ابن ادریس خطاب استاد امام احمد ابن حنبل بوده و در امام شافی از این چهار تا امام بزرگوار اهل سنت شاعر و دیوان شهر داره و کلامش در لغت عرب حجت میگه که شکاوت و ایلا ان سو احفظی رفتم پیش استادم وکی شکایت کردم که حافظم ضعیف شده سو احفظی حالا چه راه نمایی کردستاد بیگه فعرشدنی الا ترک المعاصی اصلا ربی رب به, رب به هم نداره در ظاهر قضیه ربی به هم نداره میگه رفتم گفتم حافظم زعیف شده به من گفت که گناه کم کن به امام شاخی داره بیگه, بیگه به من گفت که گناه کم کن گناه هت کمتر کن نگفت بهش بیشتر مطالعه بکن بیشتر دقت بکن بیشتر نوت برداری بکن. درس تکرار بکن تا تو ذهنت بمونه. شکاوتو شکایت کردم الی وکی عن سو حفظی فارشدن الی ترک المعاصی اون معلمینشون چقدر با خدا بودن. حالا معلمین ما امروز سر کلاس‌ها تشویر میکنن که بچه ها با تقلا بشن باور میکنه اوائل انقلاب که مالا بچه بودین یا دو سه سال قبل از انقلاب وقت عروسی میشد تو محله معلم ریاضی تو خونش نشسته ما شد جرعا نداشه میدیم سر عروسی که شاید معلم بیاد بر عروسی به چرخ ما را ببینه امروز اسم معلم گذاشتم ساز چون قدش بلند حرمت نگاه کن چی شده معلم معلم نیست یا نوره کلوی میده که تجریب میشه که پایش زهیم میشه یا از اون طرف تجریبش میکنه که کلاس درمیتی دذاره یا اگر بچه جواب ندار میگه مردشو رو بیخوتا ببرم غصالت میزنه شنیدید یا نشنید از معلم اون معلمینی که دنیا رو تربیت کردن و مسیر تاریخ بشریت رو عوض کردن اگر شاگردشون جواب نمیداد یا درس و حفظه کرد یا یاد نمی گرفت گریه می به نواز می استادن خدای کمکم کن این قف شده یا مشکل منم یا مشکل اینه کمکم کنه این روز درست نگرفته فعرشدنی الى ترک المعاصی نبالش که می زیباست و اخبرنی به ان العلم نور و نور الله لا يهدال عصیم من راهنمایی کرد که گناهم هم پند کنم و, پن و به من کبرده که علم خداوندی نور هست و نور خدا شامل انسان آسیب آسیل و گرهکار نمی شود اون دنبال تاریکیه چطوری خدا نور درش بندسته علم خدایی نوریه کارچه نوره که خدا فرد میکنه تو درش و اون داره نور رو خاموش میکنه معصیت و گناه تاریکی میافرینه اولین تاریکی در نقه بد منعکس میشه به صورت بد تاریکی در رسک آثار گناه تو چند چیز نعمال میشه یکی دل تاریک میکنه کلابران علا قلوبه مکان و یک سبون پیامبر صلی اللہ میفرماین هر گناه یک نقطه سیاه تو دلش میذارن اگه توبه بکن پان میشه اگر نکرد دو تا نقطه سه تا نکتی تا این که کل به دلش در مر میگیره دیگه میشه کلابران حالا کلوب مکان و یک سبون. و این تاریکی منکس میشه به, به چهرهش و این تاریکی میاد تو رسخ روزیش گناه رسخ روزی رو از بین میبره زهر الفساد و فلبر و البحر و باقی سوید اید الناس امروز نهی که درامن کم شده درامن چند برابر شده خیر و برکت کم شده مال گناه حتی خیر و برکت علم علمان کم شده باور بکنیم یک شیخ هایی دیشتر تو بندرابر اصلا تو جنوب نبوده قبل از اون جای خودش بماند ولی دنیا این منطقه ای رو متحول کرد خاتمش هم بخیر خاتمش شد شهید شد تو کوه های چهام و جسدش پیدا ولی بزر علم و خالصانه کاشت و نور الله لا يهده لعاصیم پس بر بگردیم وَتَّقُ الله حاضری جواب بدید وَتَّقُ الله دیگه دیگه وَيُعَلَّمُ كُمُ الله این تصمیم باید جمعی گرفته بشه خدا میگه از من بترسید، از خدا بترسید، خدا همین شما را آدم میکنه خدرباره همین موضوع من فقط آیه بعدیش هم میخونم دو تا آیه دیگه هست اما موضوع بعدی یا عنوان بعدی شماره چهارم از قسمان این شراح برای فرد بشم الله آیه شست سوره که جریان خزر با موساست خزر شنیدید اسمش نبی نبوده موسا کی بود علیه السلام پیغمبر اولول از مداد پیغمبران اولول از چند تان این خود دیگه باید بدونید چند تان یه نفر بگه پنج تا ولی همه جورت ندارم میگن. چرا نکنه نمیتونیم بگیم مخاطر که نداریم پنج تا چرا نداریم مخاطر که ما پتایی کردیم کلاس نگذاشته یا بازار شما را نگذاشته بازار ساعت 10-11 شب تحتیل بیشه دیگه رحمتی نمونده برای کلاس تو همین سروی ما یه پدری بچه شو از مدرسه یک سال میرون آورد مسئل دولتی ها همه گفتم اشتباه کرده بچه ش کلاس حفظ می آمد. نمیتونست تمام بکنه از مدرسه درشا گفت یک سال حفظ تمام بکن بعد برای سال بعدی انشاءالا اشکال نداره بیدیم نیستن مردود یک سال ترکیت ازید تو هم یک سال بچه شافت کن و خوراه شد سهامادین کمالی اولین کودکی که تو سورو حافظ شد پسر شهابودین کمالی الله شاگرد ممتازه از درست قبل نفتاد یک سال بچه شده رو برد اول حفظه تمام کن بعد برو مدرسه بوده شاید به نظر می رسید خیلی کار لخانه ای کرده ولی الان می که چه کار بزرگ می کرده بچه دوم راهنم اول آلمان راه حاف کل خورآ شد. الان فکر می اول داویستانه اینم دبیرستان شاهد داره میخونه داویستان فقرخرین ها داره میکنه اونجا داره میکنه عایش است همیشه ما از لدن یعنی نزد لدن نزد ما از نزد خودمون پیش خودمون بهش دادیم منظور خزره خضره منظور خضره سبحان الله از اون طرف خدا من چه توازوی نبوسا داده پیغمبران علال از پنجتا حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت نوح علیه السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام حضرت محمد الله علیه السلام این پنجم تا میگم پیامبران اولو العزم یعنی کسانی که از بیشتر پیامبران بیشتر مبتلا شدن ابتلا شده در مورد آزمایش و سختی ها تمور کردن و عزم راسخی داشتند و اشراف اولو العزم اخرینشه ختم مرتبه همون که تو جزء امتشید خاتم النبیین اشرف الرسل اشرف اول حالا این پیغمبر اول الالعزم که موسی باشه کلیم الله باشه چه توازویی داره برای یک عالم بشه داره. یکی از اسامی که انسان عالم میکنه تواضع در مقابل علما میگن یا باید عالم باشید یا با عالم دوست باشید یا عالم را دوست بدارید تا علم یاد تو اگر عالم نیستی باید دوست عالم باشی یعنی عالم دوستت باشه یه رفیق عالم داشته باشه اگر اینم پیدا نمیشه تو منطقه شما باید علما رو دوست بداری هر کجا که باشه شیخ عبدالحسن تو کوهل مثلا شیخ محمد خود نمیدونم فلان جا شیخ دوست فقرداوی شیخ نمیدونم فلان جا. شیخ فلان هر گجای دنیا که باشه باید دوستشون بدارید و اینو بدونید که اگر پدر و مادرین واقعا علما رو دوست بدارن به خاطر خدا که علم خدایی دارن و تمنا بکنن که خدایا همینطوری که فلاری رو عالم کردی پسر منم عالم بکن و تلاش بکنم و حمایت از علما بکنن باغت بکنه از نیست علم رو به خانه‌ی خودش بیادش آخرین آیه رو میخونم تواضع حضرت موسا که درجه اصلا قابل مقایسه واقعی نیست، ولی تواضعش رو خدا نقل کرده آیه چنده شصت و شش. تو سوره کاف تواضع حضرت موسا کلیم الله در مقابل این معلمی که خدا از نزد خودش عالمش کرده. قاللله موسا موسا دنبال خزر افتاد این الله قول اولوالعظه اون نبی نیست دنبالش افتاد امتباسش میکنه خواهش ازش میکنه بدمشه میتونی بیستی خواهش میکنم میتونی چند دیگه بیستی وقتی به من بدی حالا خواستش چیه قال له موسى موسا به خزر گفت هل ات تباکه اجازه میدی من پیرا به تو بشم دنبالت بیام همراه بیام هل أتبعك اجازه می فرمایید شما ادب داره هل أتبعك سوال میکنم اجازه بده بره دنبالش هدفش چیه الا ان تعلمني مما علمت الرشداء از اون چیزی که خدا از اون رشادت و رشد و کمالی که خدا بر تو القا کرده بر تو تفضل کرده شامل حال کرده یکی یادم بدید فعله منه به من یاد بدید آموزش بدید از این توازو بالاتر بدید تو حضرت علی رضی الله عنه همچی توازوی بود تو عبدالله ابن عباس همچی توازوی بود حضرت علی رضی الله عنه همی فرمایان من الانلمنی حرفن سیرنی کسی که یک حرف یاد من بده من خدمت بذارش میشم مشهور است که عبدالله نعباس می در خانه امیر حضرت عمر را داده از در بسته بود میرشه از به خودش اجازه نمیده در رو زنه میخواست سؤال شریع ازش بکنه میدونست که علم داره حضرت عمر رضی الله عنو در خانه میرشه از همین میرشه بعض ما یک ساعت بعض ما دو ساعت بعض موقع آهسته در میزد سه بار در میزهد سنته که سه بار آهسته در بزنید اگه باز نمیشد دروح که میگیرم میرم دوباره بر میگشد بعض ما که امیر المومنی بدارم در میامد که برلد نباز نشسته اونجور بیرون میامد یه سآل ازش میکرد چرا در نفده نه این امروز نجاستم در خونه علمان میکشم. شب مشروب میخورن شیشه هاشو میذارم در خونه علمان تفاوت تو چه خره اینجاست که میگن موت العالم موت العالم وقتی یک عالمی فوق میکنه یک عالم میمیرد پدر میمیره مادر میره احساس نمی یا یتیم شدید ولی وقتی یک عالم بزرگی تو منطقه میمیره مابر میکنید فکر میکنید ستون و فقراتو پر شده از هم پاشیده درخته قد الله الله خیلی توازو توش هیچی بگم کم گفتم ادبم توشه هم توازو هم ادب فقط این توازو یک بار دیگه میکنم می دونم که شما قال له موسى هل التباه على أن تعلمني مما تر فرشتا از اون چیزی که خدا به یاد داده از کمال از رُشد یادمون بدید آفر باشید خدا به با خاطر حوصلتون به شما پاداش بزرگ بده دلتون رو بزرگ بکنه منشره بکنه هدایت کامل تقوای کامل نور ایمان پر بکنه تو دلتون علمی که دل را منشرح بکنه وسیب بکنه از دنیا زمین آسمان وسیتر بکنه و خدا توحید کامل نصیبتون بکنه و تواضع و ادب در مقابل علم و علمان نصیب بکنه <تصفيق> نصیب هممون بکنه اینا این چند تا هست که تا اینجا گفتیم پرداشیم ان شاء اگر حیاتی باقی موند اون پنج تا باقی مونده شب یکم بگیم ولی کامل بگیم اشکال نداره زمان هست جزاكم الله خير موفق و میت باشید سبحان ربک رب العزه عما يسفون و سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دست هم می‌گیرید هم دیگه را بکنید